سخنرانی دکتر محمد اشجعی گرمارودی موضوع سخنرانی بحث پیرامون فرمایش امام حسین علیه السلام هنگام خروج از مدینه جلسه هشتم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله رب العالمین السلام و السلام علی سیدنا و نبینا محمد الجبين الطاهرین المعصومین لاصیما بقیت الاطفال زین اللهم انت السلام و منک السلام و لک السلام و علیک السلام سبحان ربك رب العزة عما و يسفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام على لهمة الحادين المهديين السلام على جميع انبياء الله ورسله وملائكته اجمعين السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين السلام على علي امير المؤمنين السلام على الصديق الشهيدة السلام علی الحسن و الحسین سید شباب اهل الجنه هجمهین السلام علی علي بن الحسین زین العابدین السلام علی محمد بن علي باغر علم النبیین السلام علی جعفر بن محمد بن السلام علی موسف بن جعفر السلام على علي بن السلام علی بن موسر و السلام على محمد ابن علي بن السلام على علي ابن محمد الهادي السلام على الحسن ابن علي الذكي الاسكري السلام على العدي بن الحسن الغائم المحمدي السلام عليك يا ابا عبد الله وعلى الارواح التي حلت بحنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغي وبغي الليل والنحار ولا جعله الله آخر الأحد مني لزيارتكم السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين حسین عليه السلام انما خرجت لطلب الاصلاح في امه جدي اريد ان بالمعروف و انها عن المنكر و اسير سیرت جدی و علي فهل توندن امام حسين عليه السلام هنگام خروج از مدينه در قالب وصیت به برادرشون محمد حنفیه فرمودم همانا خارج می برای اصلاح امت جدم در همین قسمت اولیه فرمایش حضرت اصلاح امت اگر افساد رخ نداده بود تباهی و آلودگی و انحراف و تحریف مطرح نبود اصلاح که معنا پیدا نمی کند گونه که معالجه و عدد بیماری معنا دارد با توجه به این است که این بیماری امت اسلامی و این آلودگی مکتب و مذهب قرآنی تا چه بود است که به قیمت ایجاد کربلا و شهادت عبی عبدالله و اثارت خاندان رسالت از وید امام معصوم میارزد دیدیم قرآن کریم در طی آیاتی بسیار این پیشبینی را فرموده بود و این تذکر را به مسلمین میداد که توجه داشته باشید دسته مرموز منافقین همان همانگونه که در عدیان گذشته به کار افتاد تا کلمات الهی را تحریف کند حقایق دین خدا را لوس دادد در دین من هم مطرح است خود بر با توجه به منابع اهل سنت این تذکر را فرمودند که بعد از من امت من منحرف خواهند شد و این کلاس درس انسانیت را که من با کتابی چون قرآن شروع کرده ام برای بعد از خود میدانم برخی خود را در قالب شاگردان این کلاس جا زدهاند، ولی ندانش جویان این کلاس نیستند بلکه مخالفین فرصت طلبان دنیا خواهی هستند که میخواهند شاگردان دیگر را هم از تعالی علمی و اخلاقی مکتب من باز دارند و به مکتب من خوراکی در ذهن ایجاد کنند که دین و مکتب من از آن بیزار است ناظرین اولیه واقعی اسلامی بعد از رهلت پیغمبر امیر المؤمنین و حضرت زهرا سلام الله علیه ما از خطبه شخشقی نامه 62 نهج نهدل خطبه فدک و خطبه حضرت در ایادت زنهای ایادت کننده جوابشون اشاره کردم که چگونه اوزای اون روز تاریخ اسلام رو برای ما بیان داشتن؟ مجملی هم بعد از بیان پیشبینی ها و بیان واقعیت های که چه بوده است، بیرود از منابع دست اول اهل سنت نشون دادیم که خطرناک در این عبارت خلاصه می شود اونجا که نفس سریح خدا وجود دارد اونجا که نفس سریع معصوم نبی اکرم وجود دارد افراد ذهن جامعه را تا به دنجا آلوده کنند که علنا و آشکارا خلاف نفس سریع نظر بدهند و مردم را به عمل به خلاف نفس سوق بدهند ولی به عنوان اجتهاد یا تعویل در دین که این عمل دو خطر در تاریخ باقی گذاشت یک خطر هر کار خلاف شرعی را هر کار غیر منطقی را تحت عنوان اجتهادی که ما کرده ایم این را به خورد مردم بدهند که از ابن ابی حدید خوندم استادش برای او تعدریس می کند و تعلیم میدهد تحت عنوان مصلحتی را که برخی تشخیص دادن اوناها را بادار کرد که حکم خدا را بیرفا بگذارند این خود یک به بسیار خطرناک دوم اجتهاد لوس شد اجتهاد که خود یکی از عوامل مؤثر پیشرفت اسلام بود تا افراد عالم آگاه بیغرد با توجه به کتاب و سنت و اجماع و عقل با جوابتش احکام الهی رو استنباط کنند در اختیار مردم بگذارند آن به شکلی آلودهای درآمد که حقیقت اجتهادم نقد شد نمونهی خیلی گذرا باز در این زمینه که اگر اجتهاد به این معنا باشد کار به کجا میرسد نه امکانش نبود همه اینهایی که امروز میگم کتابا شو بیارم بعضی ها از روی منابع می خونم بعضی رو هم اجازه بدید ذکر کنم احمد همبل رئیس طریقه حنابله در کتاب متنذ جلد 5 صفحه 340 ها ابن حجر در العصابه جلد دو صفحه 401 همچنین ابن حسير در اسد القابه جلد 3 صفحه 299 که همه اینها از بزرگان اهل سنتند. و این کتب از کتب معروف و مشهور می نویسند معاویه شراب می حالا فقط شراب خوردن نیست اجازه بدید من در رابطه بحثم چی می‌خوام بگم ابن حضم اندلوسی که دیوز معرفی کردم و اون مبنای اجتهادش رو گفتم که میگوید حتی ابن ملجم گناه ندارد که علی را کشته چون اجتعاد کرده این ابن حضم در علمحلا جلد پنج صفحه 82. و دو یه بنی امیه خروج برای نماز اید را تأخیر انداختند و خطبه را بر نماز تغذ مقدم داشتن سنن بیحقی جلد پنج صفحه سد مصند احمد همبل جلد یک صفحه دویشت و دوازده. معاویه دستور داد حجاج تلویه نگوین به رضم اون که علی فرموده بود حجاج باید تلویه بگوین اما معاویه گفت نداری تلویه بگوین ابن عجر حیسامی میگوید در کتاب از صفحه 129 تا صفحه 131 اگر معاویه شراب میخورد اگر وادار کرد که تلبیه نگویند و اگر خروج برای نماز عید را تأخیر انداخت این اشکالی ندارد چون معاویه مجتهد بود و اشتحاد کرد این یک. ابن یا کسیر در کتاب البدایت و نهایت جلد هشت صفحه دویشت و و جلد سیزده صفحه ده میگوید گوید یزید امامی بود مجتعه و تمام اعمالی را که یزید انجام داد شما حق لعن یزید را نداری چون اجتهاد کرده باید بحث کنیم که در این اجتهاد خطا رفت یا صحیح عمل کرده اگر خطا کرده به عنوان مجتهد اجر مجتهد را دارد و اگر خطا نکرده است هم به عنوان مجتهد اجر مجتهد دارد هم به عنوان کسی که به حق ردیده است اجر حق را هم دارد این کفتکور و این بینش که بعد از پیغمبر از خلفا شروع شد حساب شده و تیریجی کرده بودند کار را به رسون که ابن تیمیه مؤسس و رئیس مکتب وهابیت در کتاب منهاج و سنه می نویسد. حسین باید فردای قیامت جواب خونه که در ریخته شده را بدهد چون در مقابل خلیفه پیغمبر و امام زمانش یزید شورش کرد مجمل رو فهلا داشته باشید من یه نتیجه بگیرم برگردم به ادامه بحثمون از دید دیگر اسلامی که آمده از ما را به معراج برسانه است اسلامی که می خواهد انسان به خدا سوق بدهد به سوی خدا و فریاد میزند انک الی ربک که, که کادعا کدن و ملاقی آیا این اسلام باید به این صورت مطرح شود که تحت عنوان امیر و خلیفه و پیشوا؟ نایتی را بخواهند با یک برچسب اجتهاد یا سلاح حاضرین است انجام بدهند و بعد به نام دین تمام کنند تا اون هست که به نام شیخ خل اسلام ابن تیمیه را میگویند شیخ خل اسلام اسلامی که شیخش ابن تیمیه شود و بگوید حسین را باید سرزنش کرد نه یزید چون یزید خلیفه ی است و اجتعاد می کند حسین در میان جامعه شورش بر برقامی دارد بگذارید که امروز ما می توانی با قدرت. با مدرک و مستند شعرها را رو کنیم و حقایق را مرمل کنیم. این به برکت خون عبدالله الحسین علیه السلام است. اگر اهل اقدام نمی کردن و در مقابل این خط انحرافی خطرناک نمی ایستادند، امروز و جامعه اسلامی چگونه می شد؟ در دنیای قرن بیست یکم کتاب و فکر و بحث و دانشگاه وقتی یک شیعه میاد تو مسکد یا و میگه مردم یزید ظالم بود امام حسین مظلوم چون منطق و جواب ندارن مسلسل میبندن این خود نشانه است که چه بانده خطرناکی از صدر اسلام در مقابل علی و آل علی قرار گرفت قتار بنده تاریخ زورگویان و زرمندان تاریخ که میخواستند به اهداف سوء استثماری خود برسند از منصب اهل که در مقابل اون عمیقاض وحشت داشتند لذا برای اینکه بتوانند این گونه در جامعه پیش هر کار اختلافی را تحت عنوان اجتهاد به خورده مرضم بدن دو کار اساسی را انجام دادند که در مقابل اینها فردا و فردا اگر عمری بود فقط در رابطه با کربلا و اصحاب ابی عبدالله ارض می کنم اینها در دروز تاسوه و, و آشوره به خصوص آشورا برای این که در همیشه تاریخ این مطلب دمانه است که ما با چه مردمی مواجه بودیم و چه پیامی برای نسل بعد داریم چه کردن که از که کرد اما اونا چه کردن؟ یک آقا دزدی میخواد به یک خانهی به یک مرکزی شبیخون بزند؟ اولین شرط لازم دوستی از که ویداراز را دور کند اگر افراد بیداری در منزلند یا افراد بیداری اطراف منزلند و چراغ روشن است نمیتواند دزدی کند پس باید به صورتی بیدارها رو از میان ببرد چراغها را بشکند ببینید از صدر اسلام بیداران مکتب ما پیغمبر رو دیدند چگونه باید از میان ببرند یا با ترور شخصیت یا با ترور جسمشون در ترور شخصیت از خود پیغمبر شروع کردن این صحیح بخاریش که ترین کتاب حدیثی دنیای اهل سنت که این رو اطلال و قرآن می دانن. در این جلد یک و دو مجلد اول جلد یک و دو سبه و بیست و هشت اگر خواستید با شابهای دیگر تکویخ کنید کتاب و صحب در اولین با باب باب سلاف راجب سالات که داره بحث میکنه کتاب و صحب اونجا که صحبی در سالات بیش میاد حدیث شماره یادده کل و هزار و و روایت رو از که میخونه ان محمدن ان ان ابی هر ایره معلومه که کی باید در این کتاب ها راوی باشه و چرا به یکی که از آن میخونم بعد از سل النفی پیغمبر نماز کن احداث صلاتی یا لحشی یکی از اون نمازهای چارکتی را قال از فلانی یکی از اون راضیان و افرادی که اونجا حاضر بود و اکثر و ظن ال عصر نماز 4 نماز عصر بود رکعتین پیغمبر دو رکعت خوند سمه سلم سلام داد ثم قام اله خشبتن فی مقدم المسجد فوضع ایدهو او و فیهم ابو بکر و عمر پیغمبر نماز چهار رکعتی رو دو رکعت خوند عمر به یه شوبه اونجا بود تکیه داد ابو و عمر هم اونجا بودن سحابا ان یکلماهو اقای کردن بگن پیغمبر نماز غلط خونی اشتباه کردی نباید دو رکت میخوندی باید چار رکت میخوندی. و خرج از آن و ناز فضال و اقصر از و رج و دنیت او نبی زلیدین زلیدین مثل ابو و عمر احتراق پیغمبر رو نگه نداشت عمر گفت یا رسول الله شما مثلی اشتباه کردید فقال انفسی تعمقه سورد آیا شما نمازتونو فراموش کردید یا عمدن کتا کردید فقال از بر فرمودن نه راست میگید من اشتباه کردم خدا میکنم از آن دیگر بیان دوباره با این مردم اماز میخونم ابو بکر و عمر متوجه بودن ایغمبر اشتباه میکرد در نمازش در نماز چرا تعجب نکنی یا تصور نکنی که آقای اشتباهی نقل شده نه خیلی حضاب شده است انقدر در ذبییر و شده است از شخص به شروع کردن شخصیت الهی رو بیارد پایین اما اینکه امروز تو جامعه ما در این تهران سخنرانی می شود نوار امرامه گفتن چرا اینقدر از علی و زهرا تعریف میکنید؟ چرا به مردم نمیگوید علی و زهرا اول ازدواجشون جوان بودن و کم تجربه با هم دعوا می کردن قهر می کردن پیغمبر اینها رو آشتی می داد تا کم کم یاد گرفتن چگونه زندگی کنن بی ها یا بی اطلاع یا کتاب بخانی یا نخونده چرا حرف می دنی یا نه شما بگویید دوستان دانا بیدار باشید. می بیداران را از این حریم دستی کنند مگر قرآن نمیگوید يريد الله را مگر معصوم نیست. مگر علي و معصوم نيستند سبب همین شریف قرآن که اهل سنت اثر دارند و نوشتن و چرا میگه پیغمبر حتی در افضل دو این مثال اشتباه میکنه چهار رکت و دو رکت میکنه سلام میده عبویت رو عمر میفهمن پیغمبر نمیفهمه میان بهش تذکر میدن میگه بله خب بعد من اشتباه میکنم من خطا میکنم من نمیدونم میخوان شهره آیه اصیل را بیارن تایین تا بعد بگن که اگر اینها اجتهاد کردن مگه پیغمبر در نماد اشتباه نمی کرد در اون عمرم اشتباه کرد حالا ما تشخیص میدیم بهتره باید این کار بکن این یه نمونه سعیه مسلم بخاری و میدونید که از نظر ارزش برای باز اهل سنت سعیه مسلم و سعیه بخاری در یک ردیفه این میگن این جلد پنج مجلد 56 در قسمت جلد پنجم صفحه 102. عبدالرحمن ابن عوف عب سمع عبا حریره که چهره عبدالرحمن عوف عب میگه عبا نقل نغمی کرد یه گول میگفت بقیمت صلاح فقمنا نماز برپا شد ما برای نماز برپا شدیم سفوک تشکیل شد قبل انیخ رجعه الینا رسول الله قبل از اینکه که پیغمبر بیاد ما سفار و منظم تشکیل دادیم فعضا رسول الله پیغمبر وارش شد حتی ازا قام فی مسلح قبل انی و تا اینکه که قبل از این که مکبل تکبیر بگید سریف پیغمبر اومدن توی مسلح توی محراب ایستادن دادن زکره و انسر فرزقال لنا مکانکون فلم نزل قیامن منتظر او تا خرج الی نابغت قصد علین تو راسه ماا تکبر فر صلابه نا پیغمبر اومد تو محراب ایستاد خواست نماز بخونه یه دفعه کمی مخدد و ایستاد بعد برگشت دین پیغمبر سر صورتش خیسه شد پیغمبر جنوب بود میخواست جنوب تو محراب بیست نماز بخونه کسی بهش تذکر داده بود پیغمبر رفت کرد چرا شما ایستاد به نماز <تصفيق> مسلم. یه جمله بگم اینا به انگلیسی ترجمه شده توی کتاب خونه های عظیم اروپا و امریکا در رشده های اسلام شناسی این کتاب ها رو میخونن و ریشه رو آلوده کردن ما اینجا ای کتاب های مصلش رو اینو بخونیم جواب بنویسیم اونا اینو میخونن و یه حرفا رو به دین ما میزنن نسخه دیگر سعی مسلم جلدش پونزم و در صفحه قسمت 15 صفحه 152 و, و دو ببینید کاری که کردن پیغمبر پایین اومده حیغمبر اشتباه میکنه این من دو نمونه گفتم اگه برای 100 نمونه بگم تو همین چاسته سنشون میدم. و خیلی بدتر از اینا که من اشت... واقعا اشکال شرعی میکنم به جهت القای شبه بعدی از اونا رو بخونم نقطه مقابل راجع به خلافا چی میگه گه سعی مسلم صفحه 153 جلد 15 و 16 میگه که پیغمبر سخن میگم واجب مقام انسانه ها فقلت و ایون ناس احب و علی به پیغمبر گفتم یا رسول الله کدوم انسان در این عالم پیش تو از همه محبوبتر است یعنی چی؟ محبوب پیغنبر کیه؟ محبوب خدا یعنی کسی که برجت ارزنده است و به درد میخوره که پیغنبر دوست داشته باشه قال آئشه تو منر رجال بگه ما میگفتیم آیشم نشسته بود آیشم بوری گوی آره تو لذا من دو مردات نیست قول تو منر رجال قال ابوها به من گفت بابای تو ابو برد محبوب ترین انسان سن من بابای توست قول تو سم من بعد از او چی قاله اومد با بعد از او اومد در همین کتاب نیش از بیش جا به شما نشون میدم همین آیشه میگوید احب و نات من الرجال این الرسول رسول علالی و من النساء از زهران هیش از همین کتاب حب الناس من الرجال عند الرسول علی و من النساء زهرا و فاطمه که داره خب این چیه دیگه میخوان کم کم مردم را برمنعرف کنن میخوان یواش یواش پیغمبر که اشتباه میکنه اما خلفا که مقامشون در این از این بدتر اینجا مقایسه بین پیغمبر و خلفا نبود اون جایی که مقایسه ب... این پیغمبر و خلافات خلفا رو بالاتر میگه همینجای مسلم همینجاست 15 و 16 صفحه 168 و و نقل میکنه از کی از کی تا از عبدالرحمن ابی سلمت ابی ابن عبدالرحمن ان عائشه قالت علی سلمی عبدالرحمن میگه آیشه برای من گفت اینجوری گفت کان رسول الله مدتجعن فی بیکی کاشفن امساقه پیغامبت اتاق من بود برهنه بود این پا آسلوخ بود برهنه بود من هم با او این چونم بودم فتا ازن عبوبت عبوبت دردد که بیاد تو فکاله فتا ازن اللهو پیغامبت گفت بیاد و هو به عدالت کل هم. اگر بود با من، ابو وارد وارث شد. حتی حتی یک مقداری با ماست داد. شما متاز نه عمر صفت عمر در زد متاز نه لهو. بر به عمر هم اجازه داد. و هو که دارد، او شد. حتی حتی شروع کرد تو کردن شما متاز عثمان، عثمان در زد فضل در رسول الله. پیغمبر بر بروین حالا در آب کشیده بود با بدن شعب. و حدود درحمه پیغمبر نشد و سر در سیابه خطابش رو خودش انداخت این پداو شروع خودشون انداخت غال فرمود که وداع قول ذلك و یوم واحد دیگه اونجا سخنی این در من با اون رابی نگفتم تا رسیدم به اینجا پلم ما خارجه وقتی بر... عثمان خارج شد قالت عائشه عائشه گفت دخل ابو به بر... پیغمبر گفتم دخل ابوبک بر... ولم تعدل شده بالهی تباهی ابوبک عمر شما ناراحت شدید و, و خودتونو نخوشندید شما دخل عمر فلان تحت شبازم شما برای تو مسئلهی نبود ولان تو باره سم دخل عثمان فجلست و سویست سیاهد اما عثمان اومد شما پوری نشستی لباس تو پوشیدی و, پوشی و خودتون مرتب کردی اونجوری به رهنه نبودی قالم من از تحیم رجلین من ها الملائکه حیا نکنم از مردی که ملائک از او حیا میکنن من دیدم عثمان ممکنه خجالت بکشه من و باسه رو به ببینه یعنی پیغمبر خجالت نمی کشت. اینه دیگه آقا کتاب مرد نگاه کنید ابوبکر اگه بابای عایشه بر فرض محرمه با اینکه خلاف اخلاق بر فرض توجیه کنیم، عمر که نامهربه پیغمبر در مقابل عمر میگه من بودم و پیغمبر در من. اما عثمان که میاد پیغمبر زود خودشو میگوشونه یعنی عثمان از پیغمبر بالاتره اما اینکه در این زمین به بغی هم گفتن اینا چیو میرسونه میخوان زمین سازی کنن اون نادانه نیرا که در کلاس درس معلم نشستن زمانی که معلم بود یا چرت می زدن یا نقشه می کشیدن برای قیاب معلم معلم هم مختلف غیر او رو نشون می داد. معلم اومده تو کلاس پنجاس شاگرده یه شاگرد مورد نظرش او رو معرفی می کنه کنایتن هم می خواد بگه تو کلاس رونود یا راه بیدا کردن جمع کنی. اون وقت برای یه این که نظر اون معلم قبلی رو خونسا کنن آنی را که معلم گفته کنار بزنن دیگران رو جاش بینشونن چه میکنن خود پیغمبر رو میکنن اونا رو بالا میبرن و پیغمبر برای این اینشالان رو بعد میگم پیغمبر چه میکنه تو سفر میگه علی تو حضر میگه علی تو معرام میگه علی تو منبر میگه علی تو درس میگه میگه علی هی hey, علی زهرا علی زهرا زهرا علی حسن خسین، حسین حسین حسین چرا؟ یعنی شاگردایی که میخواید از من درست بگیرید این ها خدا هم کجا دیگه چی بگه خدا؟ قل لا اصلا كله kommen alle يا اجران الا شما رو امن يا اگه ما هیچ آيه دیگه در قرآن ندوشید. راد بهله ده. همین یه آیه کافیه که خدا میگه اگر پیغمبر از این کلاس رفت دنبال قربای پیغمبر نرسید راستگویی. ببینید مد یه کار بر اساس مدره کار بر اساس ادالت و, و حکمت باید با اون کار مناسبت داشته باش. اگر کسی کاری برای من کرده یک عالم و حکیم نیستم بفهمم این کار چقدر مهمه دو تا چشم من داشت کور می شده یه بنده خدایی اومده خونه دل خورده رنج برده فزش تمام نیروش رو کرده من چشمم سالم منده. این چقدر به من خدمت کرد. من اگه انصاف بفهمم میگم واقعا شما یک عقب بزرگی به گردن من داری که خدا شما رو وسیله قرار دار یکم چه لطفی در عقب من کردی من بفهمم ارزش این کار چقدره دوم توانم باداش بدهم یا توانم؟ یه زمان میگم آقا ارزش کار شما شیلی باداش من توان ندارم لذا خواهد زمان میگم متشکرم بیشتر از این از من بر نمیاد. خدا میداند کار پیغمبر چقدر ارزش داره و خدا من می تواند پیغمبر رو بده برای اینکه که ما بفهمیم میگه اگه میخواید عرضش کار پیغمبر بدونید از نظر من خدا چقدر مهمه محبت محلویت چرا؟ تو خدا چی میخواد؟ هدایت ما رو پیغمبر چی میخواد؟ هدایت و کمال ما رو مگه پیغمبر برای هدایت و کمال ما اونقدر رنج نمیبره که خدا به این پیغمبر میپرماید تا ها ما انزلنا الکتاب الکریم لتاشقا اینقدر که خود تو به مشقت که نمیخوای بندازی پیغمبر اینقدر بر آج برای امت پس پیغمبر چی میخواد هدایت میگه اونی که تو میخواید و اونی که من میخوام در این مود یعنی مردم در سراغ اهل بیت رفتن اونی که ما میخوایم میشه نرفتن نمیشه به از این بر خدا معرفی میکنه از اونبر پیغمبر معرفی میکنه به چه صورت در منابع معتبر اهل سنت دیدم پیغمبر نشسته بود ابن عباس از پیشش یه ادم دور پیغمبر بودن گویا سلطهای مردم یه اعتراضی دارن روش رو نمی‌شوره شما بگیید به من گفتن من شما بگم پیغمبر گفت چی ابن عباس گویا اینا میگن که آخه پیغمبر این جوون امیرالمؤمنین نسبت به دیگران تا سنی نسبت و بقیه نداشتن کمتر بود جوون بود نسبت این جوون پیغمبر اینقدر احترام می‌ذاره آخه میگه تا گفت این پیغمبر این پاپا شدن اینجوری روزادی‌ها نشسترن قصه‌رو کشیدن بالا هم. ببینن فرمودن به علی میگن این جوون من خودم شاهد بودم او اصداده بود داشتن گله دا آدم را میسرشتن اینجوری معرفی میکنه این شاده روزه آجدورا اگر زنده بودم از خواهم که از ما هم حسین صبح آجدورا وقتی میاد برای اصحابش خود معرفی بکنه برای دشمن ها چی میگه؟, میگه؟ من پسر قیقمبرم من پسر اونا بیشتر از نمیفهمن برای اصحاب چی میگه؟ میگه خدا ناظر بر جمعیت بودیم بودم اون روز من از تاوی فیه دوکشان که نه از نشان بود و نه از تاک نشان حساب دیگری مطبعه و پیغمبر اینجوری معرفی میکنه به مردم اونا بیخواد یه حرفا رو به دو مطلب در یک کتاب دو کتاب دفت کنیم تفسیر برتبی درول منصور سیوتی سنن بیهبی تفسیر کشاف مستدرک حاکم نیشابوری همه اینا گفتن اومد ازش خبصیر فاکه و عبا رو شاهد کرده من منبر یه بنده خدای فای منبر داشت قرآن میخون سوره اوست و توله و به کلمه فاکه و عبا قول خلافه معلاش گفت نمیدونه اومد با طازیانه زشت سر طرف کوچه سوالات و مشکل می‌کنه بخونید بس دیگا وا اینقدر تعمق نمی‌خواد یه زنی از پشت پرده پاشود یه مسئله شرعی پرسید عمر گفت بلد نیستم خانم دیگه از پشت پرده گفت خلافه جوابش اینه اینایی که میگم اینا میگن بعد عمر برای اینکه از رونره گفت کل الناس عس من عمر حتى المخدرات مخذرات الحجاز مخدرات في الحجاز نورسان تو اجره نورس تو یه دختر خانم کسب النساء بس 9 سال 10 سال 12 سال چیزی میفهمه که من نمیفهمم تو مجبوردی اونجا است اینو میگه او بس همین مصدرک صحیحین و کتاب الاحضیاء میگه لو وز بر گفته نعوذ بالله لو وز علم عمر في و علم اهل الارض لا رجع الى اگه علم تو کافه ترازو بذاریم کل ناس رو توی کفه دیگه بگذاریم علم عمر بر علم همه مردم روشان پیدا می‌کنه خدا پیغمبر رو خود بنوذ بالله کی حرف شما راست باشه یا خود عمر ذرو خودسه چون عمر خودش میگه کل الناس افدره من عمر اصل مخدرات به اجازه یک آیه رو نتونسته تفسیر بازی می‌کنی بازین چرا مسخره کردیدین رو چرا می‌خوید یونا رو اگه نوبت به فکر و بحث میره شعرینی میشید یعنی که عقل نداریم عقل نمی فهمد تفکر نمی کنیم استدلال نمی کنیم منطق رو بذارید کنار سریع سریع و بدترین ضربه رو بر موانی عقلی و منطقی و استدلالی در دنیا اصلاح اشانره شروع کردن و مرجعه تا رفیق به بحامیت که اصلا تره بحث عقلی امروز در دنیای وحابیت حابیت نیست که از شد بسره چرا چون اگه عقل ندره شد میگه اینو عقلانه نیست میخوان مردم توی جمودی نگهدارن پیش ببرن اونجایی هم که میبینن اغلای هستند زیر باری عرفان نمیرن مسلسل میبنن شما کربلا درست کردی، خیال کردی، تمام شد اماموتینو کشتید یارانشو کشتید کشتی، از کش سوم تازه زدید به بدون بدل تازون دید خیام را هم آسکت زدید خیال کردی تموم شد اما متوجه نشدید که چرا و ایرا که ایزد بر فروزد هران کس پفک کند ریشش که ریشش بسوزد خدا بیرد الله در این زمین چی پرمونی ال تلا به حتم خلیقتن و الوزهم و لا به حکمتی نورال خدا فی لیال فی زلالت مدله يريد الجاهدون لیتفعوه و یعوالله الا انیت امه و یعوالله الا انیت امه یه سبقصد آلمینه الالمعالی من سبقت گرفتم تو آلم با او عرضش ها سبقت نگرفتم آم چه سبقتی از این بالاکتر هر جای دنیا برید وقتی صحبت بحث و منطق و دلیر میشه میگه والله نمی‌تونید دو نفر مخصوصاً همه یک کله اون واحد است دو نفر در دنیای اسلام کار کرده در دنیای تشیع که مخالفین خط علی و حال علی به این دو تا که میرسن زانو در میان میگن دیگه بیچاره شدیم یکی قضیه عاصف زهرا سلام الله که یکی قضیه عاشورا و کربلای ما حسین اسلام. تنمیتونن چیزی بگن سراغ صلیب اینا الان معادی. آقا اونا خاصن دن، یوریدن جای دونه خاموش کنن و یه عباده ایلاع نیوتنه. اما خدا بعد اینجوری که مگر اینکه دخترینو به اسمان برسونه کارو به جایی میرسونه جای می که تو هر محفل علمی، تو هر کلاس، تو هر درس تو هر مجمع تو هر مکان، وقتی بحث حسین علیه السلام رو مطرح میکنی، با توجه به ریشه ها، ترافون چنان شیفه میشه علاوه. لازم میشه دیگه آقا, آقا رو ما کم شناختیم یا دیر شناختیم یا خوب به ما معرفی نکردن خب این خط در طول تاریخ یک چی بود گفتن دیداران را از اطراف این خیمه دور کنید ما میخوایم شبی خون بزنیم شجوری دور کنیم یک ترور شخصی است رو میکوبیم علی و علی رو چگونه بکوبیم دوست نمونه عرض می‌کنم سریع دیگه حالا فرصت اجازه نمیده میخوام مسائل دیگه‌ای بگم که دو روز بیشتر باقی نمونده بخ. ماضیه دستور داد مروج و مسعودی مسرودی می نویسه نتونستم کتاب هایی که بیارم مروج و زعب می نویسه ماضیه دستور داده بود در شام به بچه ها بزرانه بدن بچه ها با بزرانه بازی کن از بود پست پیدا کرده بودن علاقه داشت شد یه هفته افه می که بچه به باله کاملا اون پیدا کرد بعد از یکی دو هفته معمورین ماضوی مب بودن درن رو ها روجمعآوریکنن وقتی بچه ها خوبه شب بچه ها خو بزرگاله ها, جمع, شد. ها که جمع می شد که جمع می شدد می صبح بچه ها از خواب بیدار شدن پدر مادر بزرگقاه ای ما کو معموری ناظر بودن خلاف به این بود خونه رو سرشون خراب می شد چهکار میکرد از شب علی نصف شب اومد بزرگقاده شما رو دزدید این بچه کینه ی علی رو تو درش میگه. یه ای. ای علی اینقدر بده پس داره معاویه هر دفت منبر میره علی یه معاویه علی حرف میدنه یه بزگالم نمیداره ما داشته باشیم لذا وقتی احله بهی که پیغمبر ما بردن شام همه سر میدنه همه پوش میدادن این از اون خانواده ای که هر اولی وقتی که خطبه های امام سجاد و زه اینه به کبران سلام الله علیه شروع شد تازه مردم فهمیدن چیه لذا وقتی سباه شام گروه گروه می اومدن کوفه بیانی کربلا امام حسین گفت چی میخواین از من چرا با من که می میخفتن بغزن به عبیق بابا یه نوری جله دادن ترور شخصیت معلم را از معلم بودن انداختن و در چشم مردم به صورت دیگری جلبه دادن آقا اجازه بدید یه بحث تربیتی الان کنم. همه دانشمندان علوم تربیتی روانشناسان، روانکاوان فلاسفه در بود پرورش انسان حکمت عملی معترفن به این سخنی که الان میخواهم ارز بکنم حرف درستی هم هست که چی اگر مربی بخواهد در تربیت شاگردان موفق باشد باید اعتماد متربی را به مربی زیاد کنیم خود را به ما چرز میکنم باید اعتماد اتمینان خاطر مترفی را نسبت به مربی زیاد کنیم و بالا ببریم <تصفيق> یعنی وقتی مربی داره به مترفیش میگه این کار رو بکن اتمینان داشته باشه راسته که انجام بده اجازه بدید در قالب مثال در عالم چه بگویم بنده یک زمان فرض کنید مثال میزنم که سارت با آقایان اطباء نشه مثال میزنم من به علم ایمان نداشته باشم معتقد به تبوبت نباشم خب بیمارم نمیرم پیش طبی منو به زور ببرم پیش طبی من به دستورالعمل های پزشکی سرسری مینگرم یا نه حتی تو دل خودم مسخره میکنم یا نه داروم گرفتم میام خونی میدم دور چرا تو معتقد نیستم اما وقتی که اطمینان پیدا کردم این پزشکی عادت مطلع دلسوز واقعا برای در دفع درد و مداوای رنجمند دستور میده است من چقدر خودم میرم سراغش چقدر درخواش گوش میدم چقدر نسخهشو دقیق عمل میکنم حالا اگر من بیماریم پزشک که ایکس هم اونجا مدعب بشه با تمام وجودم میخواد منو مداوا کنه دشمن من فهمیده که اگر من پیش این کبی برم دردم مداوا میشه میاد زیر به ریشه رو بزنه اتمینان من نسبت به هم میکنه؟ از بین میبره من نسبت به هم پزش دل سرد میکنه بیمل میکنه بی علاقه میکنه نتیجه خودش رو میگیره اینا چرا این بادر رو بچه رو بدن چون میدونستن علی مربی بشریته اگه مردم به علیت بیان پیدا کنن نوبت به نمی رسد لذا قبل از اون که معاویه خودشو تر کنه علی رو میکوبه ولی امام سادت به من تو دستور داد قبل از این که اظهار مرایت علی و آده علی بکنی باید اظهار تبردی از تشمنان علی بکنی اونم اون وره قضیهشو به ما یاد دادن اگه تبروی نداشته باشی توسی نداری براعت از بدن، مقدمه بر دوشتی خوبان است اصطناب و سیاد اولا من اکتساب الحسنات صد هزاران دام و خدا ما مرغانی حدیث و بینما بدم تاب دم بسته دام نوین هر یکی گر باز و سیمرغی شویم میرهانی اردمی ما را و باز سوی دامی می‌رویم ای مینیاد ما در این انبار گندم می‌کنیم گندم جو آمده گام می‌کنیم مینه اندیشیم آخر ما به خوش که خلال در گندم از مکر موش موش تا انبار ما لانه زد است در فنش انبار ما ویران شده است اول ای جان دفع شر موش کن بعد از اون در جمع گندم کوش کن اول ایجان دفع شره موش کن بعد از اون در جمعه گندم کوش کن گر که موش دو در اموان ما گندم اعمال چل ساله کجاست این دو خط در مقابل هم رو ببینید یک خط میگه بیدارا رو بکش بیدارا رو بیرون بزن نزا من بیام دوزی کنم خط دوم میگه قال تابعا رو بیرون کن از دل خانه دل جارو کن و بنگه مهمان تلن خانه دل جای صحبت ازیار دیوش رو بیرون روز پرشد در آید در خانه دل اندکی حد بدا پاکان داشته باشی جای پاکان نید تبرغی رو بر مقدم بدا دوستان شما دست دشمنان شما همسه دسته دوستان شما دست شما دوست دوست شما دشمن دشمن شما دشمنان شما سرستن دشمن شما دوست دشمن شما دشمن دوست شما لذا ما اگر میگیم علی جان دوست داریم ولی علی ما کینه ما رو در دل داریم چرا؟ چون او دشمن تو بود ممکنه بگید آقا چارده افرگذش رفت نه خط تعلیم و خط معابیه در طول تاریخ واقعی میمونه صحبت توجهی به خط چرا حالا پردای قسمتی از دستم رو امروز میخواستم مطرح کنم قرصت اجازه نمیده این بحث خواهم کرد یک این خطی که اومدن چه کردن گفتن بیدار ها را اندیشمندان را پاکان را برگستگان را ترور شخصیت میکنیم یا ترور بدنی. کما که کردن پیغمبر اینجور رفتن ترور شخصیت کنن سفت جان پیغمبر رو هم کردن یا نه سفت تاریخ شطور پیغمبر رو اونگونه که رموندن که پیغمبر رو بکشن که حالا پرستش نیست بگم بعد از پیغمبر چرا زربه رو اول برز به زهران می زننن. پیغمبر علی حسابش جدا چای خودش محفوظ منهای وحده علی سلام الله علی پیغمبر چه کسی رو بندازه زهرا به روخ مردم کشیده تا حتی که بوسه دستش دفتش بزنن و به فرمایت ابوها فداها به یه ابیها ای پس از دیگه پیغمبر اون نگهبان و پاسبان حریم اسلام زهرات باید سیری رو به صورت این زهرا بزنیم نه تن حاطر رو شخصیت می کنیم شخص زهرا رو هم از میان می بریم و پیغمبر برای این نشون بده می اومدن پیغمبرو صدا می زدند یا محمد صلی الله علیه و آله و آله نازل شد چرا حریم پیغمبر رو رعایت نمی‌کنید بگی یا رسول الله یا نبی الله خود این یه دلیل چیه واسه اینکه رو تحقیر کنه پریروز متشکرم از مستمع عزیزی که پیشو داشتم و دارم بیشتر شد یه طس مطلبی رو بعد از اعراجه بنده راجب و شیخ شریه یه گفت گفتم که کردم میدونید که وقتی که اول در صلوات خطبه شیخ شریه رو می فرمودن یه دفعه کیپاش شد یه جمله‌ای فرمود حضرت فرمود که خیلی خوب دیگه تموم شد ابن عباس که اونقدر دلم سوخه ای کاش این دی موقعی حقو نمیجات حضرت بقیه رو ادامه نمی اون آقا به بنده فرمودند عزیزان حاضر دوستانمان فرمودند فلانی من تصور کنم اون مأمور اصلاحاتی اون زمان بوده حضرت هم متوجهش رو تنبیه کردیم یعنی سری کشید کشیده متوجه ما به چی میگیم و حتی امیر المؤمنی در اونجا مجبور شد قرط بده بقیه شد یعنی چش خوره رستن. نه که هدی جانش میترسه یعنی کنون سلام میشه از آن ببینید لذا این تصور نکنید میومد می گفتن یا اسم رد رو خیلی هم مسعدله تبد نمی میخوااستن پیغامبر رو تححقکن حساب شده بوده بهجا آ ناظر میشه؟ پیغمبر احراشون گردنی حریم شد آنااضر شد لحرا سلام علی ها از قبل از نزور این آگر و پیغمبر میرسید گفت یا عسته یا بد ها با شد پدرد تا این آیه نازر شد پیغمبر وارد بر لحرا سلام علی ها شد من از منابش یه نمیگم سن ترمذی نقل میکنه از ساعده اهل سنت میگه پیم بر وارد شد یه خواهد دوید گلو سلام علیکه یا رسول الله یا نبی الله پیغمبر نگاهی زهره کش رو کرد گردی کرده انت قولی یا اما و اینم و حب للقد و ارزا به رب انت قولی یا اما دخترم تو بگو بابا تو بابا این ای دل من این ما ای شدر دوست داره تو دیلم راه بری میگی بابا و ارزال رفت و خدا به این را دیتره تو برانتز بگم چرا فیران بردوش داره بر زهران بگی بابا هر پدری افتخار میکنه اولاد ساله اولاد آلم اولاد ارزنده سوگه الحبت الله هر زندم اینه فیران برم خواهد بگی وقتی زهران چون تو میگی بابا میگم من یه افتخاری بابی گذاشتم اما یه جور زه هم قلب پیغمبر لرزید کجا به نقل ابن قطیبه در الامامت در سیاسته که خود از قدمای اهل سنته میگه وقتی زهره بین تر دیوار قرار گرفت که یا عبتا یا رسول الله ما تالت این آمن بعد که من ابن الخطاب و ابن عبی خافم و رسول الله بابا جان بعد از تو من چه دیدم از اینها لذا پیغمبر اینها رو به رخ می و میخواد، خواهد اینجا رو دفتن کنید امروزی که وقت جازه نمیده. اینو میذارم رو می دارم بقیه فشالا و می خواد. کسانی که پیغمبر را دوست دارن این شخصیت آراب جهانیان معرفی کنن و لذا پیغمبر فرمون ذکر و علیه اواده بگی زن بذارید به زاری دارید بگید ما مولی اونا میگفتن علیمی کشتنه شد ما میگیم به تو به ما بگن مرتجه اگر کجا جا اینه که از یک رجون الاغی خدایی آلمه شجاع انسان دفاع کنیم ما افتخار میکنیم که به ما بگن مرتجه اما جهان روشن فکران ما خیروان علی هستیم که به طبی محرفت مکتب علی و سرمونو در مقابل هیچ آستانی ننشایید جز در خانه علی و آل علی دینی از ازینی می ترسان می میخوان این آزادی رو از بس دریل بگیرن رسامی است سرش جمع زنه جنگ کلی دربارو قدیمی شد چرا بدانا من اگه قدرت جام خدایی کرده جلو و من یه چیزی ببینم میگم وای بربر من. امام منو کشتن چرا نگم وای بربر من تنها امام منو کشتن به نام خارجی همه منو کشتن ذکر و علیه یه نمونه بگم جناب عزیزه جان هم فدای خاکش روح هم بلندش ما پیروبی میکنیم از عبوزر و زن سلمان ها یا نه این کتاب از طبقات کمراد ابن سعد سکر در دنیا یه سنت جلد دو سرطه سی سد و این قسمت رو که انشالله پردا از خواهند کرد در رابطه با این مطلب مطلب شده میگم میگم که مقدماتی میخواد پردا می همون همونگونه که ترور شخصیت کردن خوراک فکری هم گرفتن کار دومی که پردا میگم چیکار کار کردن؟ گفتن حدیث مرد نکنید چرا؟ چرا حدیث نقل نکنه که برسوی اینشانا فردان میجن چون وقتی حدیث نقل بشه حقایق رفته میشه اینجا این کتاب طبقات ابن سر جلد دوبام صفحه ای سی سد و تا اخبر نا سلیمان ابن عبدالرحمن دمشقی اخبر و الولید ابن مسلم ان فلان تا جلست و الانی در الغفاری فلانی فلانی فلانی نقل میکنه ما با عبوزر آخش عبوزری مردی اینا چی بودن اینا چی فهمیده بودن یا علیه بودن یا مام ما ما شما زهراتی خیلی بیشه اون شیرینی و حبتون رو که سلمان عبوزر کشیده بودن یه مزاری به بابه چشده خیلی به نمونه شما به جای دیگر برده نشبه ما معشوقمونو پیدا کردیم زادش بشید زادش که خودم روخید جسم و جان و را سروخید هرکس این آتش نسودت پخده نید این آتش به خام ای تو داروی خلی تفخیز من و یه یعنی چیز من و هر چیز من رو هرچه غیر توبت آفتم خیشتن را در وجودت یافتم میگذاردن گرد که جانم از فرام زنده میدارد دلم را اشتیاب راستی را از که جانم سوخته این بود تو افروختی خوب کردی پیش خوب کردی پیش در جانم بسو همچه خواهی بر لحیبش برفروز آقابت من یار خود را یافتم نازمین دلار خود را یافتم یاد تو رو موشدگره هم کار من ای خوشا من علی جان تا شدی تو یار من خدا عبوزه داره به حرمه جنابه میسم تقمات حافظیم بشید بین کوفه و نجف به روز رفقه از هم دریم راه بودن بیشت نوزه نفر ایشتر نبودید اوتوموسیستا ایش پیاده شدیم رو فقط دویدن من شروع کردم. یه عرضیتن خدا میدونه دم به یه سه دادن هده از دوستان خوب محضرت بایه بنابود سیار مردمون تدهیم تو آخری. سفر آخرین بلنده سو من اصطاده بگم شده حال دوستم به خدا خجالت میکشم برم تو میلرزم میسم شیه هست منم شیه اممار شیه منم شیه ابوالدر شیه منم شیه بالای دار درستشو بریدن گفت علی آشو بریدن گفت علی به من یه فرش بدن میگم دیگه جامعه نمیپسند در قلب اما عوض کنن خب این افزاره میگه جلست کن الان عبیزر الان غفاری ازوه غفه من با عبوزر نشسته بودیم یه مرد ظاهرن نشون میده نوحرمه به ما یه مردار مثلا جاسوس که نیستاده بود. ابو ذر هم اینجوری داشت شهادیت پیغمبر رو نقض می‌کرد عقاله ب گفت المؤمنين شما هم نگرده که نظر ندید نظر ندید نظر ندید و روایت نه نکنید فقال عبو زر و الله عبو زر گفت خدا قسم لو وزعتم و سمسام علا حادهی و اشار اله حده خدای شمشیر اینجام بگذارید علا انعط رو که کده مثل سمیت رسول الله لانفست ها قبل انگخون ازالک دست دستت حفظ زدن بر نمیدارم قبل ازی که شمشیر تکن بدید حدیثه بر اول میگم این دو خط اون خط میگفت چی؟ معرفی نکنید زلی نکید امروزم تحت عنوان اینی که شرکت شخصیت پرستیش آقا گهرماندوستی در همه دنیا مطرحه انسان دوستی در همه دنیا نتره انسان دوستی اگر شیر باشد چرا خدا گفته الله اصلكم علی ازل الا الموده نه نقصه میخواد دلت رو از اون خوبا جدا کنی آب کوارا نخوری چه بمانی آب آلوده رو بخوری ولی خدا آب آلوده ال آب گمارای علی و علی رو به خام ما میریدن تا آبهای آلوده برای ما کذبه نده باشن تو که آب گمارا دسته که آب آلوده نمینوشی لذا اونا میخواد علی رو بکوبن اما امام حسین همه بیبرد چه ها علی علی یک و همه علی یک علی یک و سر میگفت خدا به من اولاد بده بازم اینشو میدارم علی لذا یکی از این مقدس جناب علي اكبر السلام الله عليه من نفهمم حدی یک برکی فقط اینقدر میتونم بگم وقتی برای میدان حرکت کرد امیر الم... امام حسین علیه السلام یه نگاه میکرد گذش برزی رو به حاصل مبارکشون اینه گرفتی کرده در سرو و آسلان بلند کرد این هی ای خدا ترستادم به سوی این مرد این مردم کسی را که عشق به اونا خالدن و خود خلقن به رسول الله عشق و انا خلقن و خلقن به رسول الله خلقن از نظر بیاف خوب نبه و نتیجه حسابی داره خلقن لذا اگر پیغبر می هر وقت حضرت بهش می کنم فاطمه را می گویم امام حسین میگرد و خود پیغمبر میکنم علی رو میگویم و این دوتان باید ایدت دادر دنیا بره یعنی جامعه تعمل این گده ها را ندارند لذا وقتی علی اکبر میاد میدان این مردمی که میدونند علی اکبر کیه شمشی رو به فردش بروز میادرند همونطور که شمشیر رو به فرد علیم نویتاره پرون آوردن یه وقت شمشیر به فرد علی نشست فرد شکافته شد خون سرازیر زیر گرد رو تدا زد این نمیتونه روی عرض خودشو رو کنترل کنه خودشو خم کرد دستگار آورد به گردن که شاید این هرز او به سوی کیام برگردونه خون سره بارک ریز و صورت آه کشم نتونست ببینه جای که به جای اینکه به طرفش خیام بیاد رفتون دل دشمن اینا که با علی و خالد اینا هم نام علی اینا پسر علی ابداع